ش زیر نظر محتی صهیلی شندگان وفادا و رس سخنشناس از طرف میهمانان گرانقدر و شاعران ارزشمند و هنرمندان ارزشمند به شما درود می‌فرستم درودی پر از صمیمیت و خلوص و اجازه می‌خواهم که میهمانان و شاعران و هنرمندان این هفته بزم شاعران را به شما معرفی کنم میهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر فرخرو پارسا معاون محترم وزارت آموزش و پرورش هستند و شاعران گرانمایه ما عبارتند از جناب آقای محمد دانش بزرگنیا آقایان محمود گلشن کردستانی و ابو تراب جلی گویندگان عرجمندی که در جای خود اشعار شاعران را روایت خواهند کرد خانم فیروزه امیر موئز و آقایان غزائیان و امیر نوری هستند و هنرمندان پرشور این بعض آقایان گلپایگانی و فرهنگ شریف خواهند بود نکته رو که بنده میخواستم با شما شنوندگان عزیز در میان بگذارم این است که عدهای از شنوندگان معتقدند که جنبه شوخی و تیبت در برنامه بزم شاعران چم باشد یا اصولا نباشد و عدهای معتقدند که برنامه را بیشتر با شوخی بیامیزیم به هر حال چون برنامه متعلقه به شماست از شما استمداد میکنیم که نظر خودتون رو در این باره به ما بنویسید که آیا شوخی و تیبت در این برنامه نباشه یا باشه یا اگر باشه چه بونت باشه خب از خانم دکتر پارسا باز شروع بکنیم مثل اینکه که, که صحبتی به فرمان و خاطری حرفی نصیحتی پیامی حالا خانم استدام میکنم گرمونبنده خیلی متشکرم از اینکه فرصت شرکت در این برنامه ای که واقعا پر از احساس و لطف و دانش تسلط بر کلامه به من دادید البته باید ارز بکنم که با اینکه هیچ وقت شاعر نبودم ولی همیشه از شعر لذت بردم و حتی در خانواده و سنین کودکی و جوانی همیشه سعی کردم که احساس کلام رو در شعر درش بکنم به طور که در شاید در سن 14-15 سالگی حافظ و مولوی رو از حفظ بودم احوان کوشش میکردیم که در خانه مخصوصا به مشاعره مشغول بشیم و بیشتر سعی میکردیم که هر روز چیزهای تازهتری یاد بگیریم مخصوصا به دنبال این بودیم که شعرهای مشکلی که آخرش به کلمات مشکل مثل لام و سو و زال و اینها ختمیشه پیدا بکنیم و, بازم و دیگران رو در مزیقه بذاریم ام. و خوب یادم هست که حتی افراد مستند خانم در این کار با ما شرکت میکردن و از جز خاطراتی که برای من منده این هست که اونها بین کلمات سین و سات و سه در جواب دادن تفاوتی نمیذاشتن و این حرف همیشه برای ما مورد خنده بود که وقتی که ما شعر رو به سین ختم کردیم یکی از اونا با سات جواب ما رو میداد و ما گفتیم تفاوتی نیست هر دوش یک صدا داره و البته خب برای پارسی جما واقعا نم مخارج حروف مترای. بله، شادم هم همین جور بوده. اه. و به علاوه همون جور که عرض کردم رقابت بسیار زیادی بود. داریم که هر روز شعر تازه‌تری حفظ می‌کنیم. حالا هم من این کار رو با فرزندان خودم می‌کنم و اغلب در مواقعی که دور هم هستیم و نشستیم، بهترین تفریحمون واقعا مشاعره است. البته من حالا دیگه از اون‌ها بسیار عقب‌ترم. از لحاظ اینکه یا یه مدره فراموش کردم یا دیگه فرصتی برای یاد گرفتن شعر تازه نیست، ولی بازم باید عرض کنم که شعر یک کلام پرقدرت و با نفوزه و واقعا انسان احساس میکنه که از یک شعر خوب تا چه حد میتونه لذت ببره و به همین جهت هم من کلامم کتاه میکنم برای اینکه به اشعار معنا و نقض آقایون بتونم گوش بدم. بسیار متشکرم که بیانی فرمودی و بنده یک متنمی برای بیان حضرت علی دارن و این است که شعر به مبازات زندگی مردم در حرکت ما میگوریم تا شیرخار بود لایلای لای گرم مادر رو با شعر میشنید به کودکستان رفتیم اون تصانیب و ترانه های معصومانه ایام کودکی رو با شعر به ما یاد میدادن آمان. به درستان رفتیم تند استاد رو به ما سرمش میدادن با شعر جور استاد بهزه مهر خدا عدب مرد بهزه دولت اوست با نست به ما سرمشک نمیدادن بعد در بیرستان رفتیم همینطور اونا که آرف میشن زبان صناعی و عطار رو میفهمن باز به زبان شعر عاشق میشن با زبان سعدی اشعرزی میکنن با زبان حافظ اشعرزی میکنن واقعا شعر فارسی جز خون مردم ایرانیه و به همین دلیله که این برنامه تونسته جای خودشو در بین مردم ادب دوست باز کنه این نامه دستمیمی بود برای مطالب گرم و داغ تلگرام خب در ضمن برنامه اگر باز به یادتون مطلبی آمد صحبتی آمد اینجا بعض ما خیلی خودمونیه و ما استفاده خواهیم کرد از بیانات و اجازه بفرمایید که پس از جنوبایی دانش خواهش بکنیم که قسمت شعری ما رو بیشون آغاز فرماید اما دگی دارید جنوبایی دانه بفرمایید از چند سالگی سرکار شروع به شاعری کردی من بنده خیلی کودک بودم که شروع کردم به شعر بزنیم الان چند سالتون رو مدارت میخوام؟ الان دارم که من از نظر قیافید سنی تشکیز میدم میخوام شده من دکان بیشتر <تصفح> خا اس گنا اصولند از اتالی میدونید فند بنده قصیده شرایش بله بله قصیده محرویان شناگرتونم خیلی معروفه بله بله اون وقت این گاهی همین چیزهایی از قبیله قزریات و فلانهای میسازن بالاخره مددی قبضلی... خب این تهاشیرا کردن شاید هم راضی نباشن که مات ما دست بردار نیستیم قربون باید مطلب باید فایل رو بریم مالو شعرا شناسنامهشون هم بیارن برای اینکه <تصح> یک غزتی ساختم به یک مناسبتی که حالا اینجا به نظر مبارک نیستم من هم سهجر توت در رنج بی حساب امشد نموده چشم من از خواب اعتصاب امشد بران سر است که این چشم دور مندز دوست به سات عمر مرا و افغانت براو امشد <تصفيق> دوری روخته آفتاب رو عجب است که زنده مانم تا تیغ آفتاب انت. خیلی هم با خلک مرا به جفا بردن انت. انتخاب نمون فلک مرا؟ فلک مرا به جفا بردن انتخاب نمون ببین نتیجه این حسن انتخاب خیلی حسن انتخاب, <تصفيق> انتخاب اتاب و خطاب و فراغ و محجوری کتاب وقت مرا نیز فصل و باب امشب شب فراغ تو اندو فزاس باده ناب جز خمار ندیدیم از شراب امشب بدیده روی تو را دور ماهو میتابد متوجه نشدن بدیده روی تو را دور ماهو میتابد ها. ببین بقاحت بی حد ماهتاب امشب یعنی منظور چشم ماه دور دیده بله تو قائب از نظر و ماه آسمان حق بود سبر تیزه به رخ برکشد نقابم شد فقان و درد که از چشم بد به دور افتاد سه نکتگوییت این گوش نکتگابم شد نه رزت هست به چنگ و روباب دانش را چونیز چنگ فری بنده روبابم شد <تصفيق> <تصفيق> حالا یک شعر دوگومی هم برای سرکار پیش بینی شده و اگر حاضره لطف فرمایید با آقای امیر نوری آقای نوری با کمال افتخار آقای شریف خواهیش میکنم که اینعیتی بخرمید نهان گشت و ندارم خبر از او دل برد نهان گشت و ندارم خبر از او جز در دل مجروح نیابم اثر از او, او رفت ولی در من دلخسته به جا ماند خون دل و سیراغ به قم و چشمه تر از او چون صورت فتانه گلی را نشناسم زیبا کر و شاداب کر و تازه‌تر از او عاشق شدن و کشتن عاشق هنر اوست عاشق شدن و کشتن عاشق هنر اوست بنفید ندیدم زنده کویان مگر از او قیدائی و تسریم و رضا سر به سر از من نازک دلی و قهر و ادا سر به سر از او گلزار ادب جلوگر از گفته دانش چون گل که بابد باغ ارم جلوگر از او شکریم شکریم آقای جلی سرکار نوباتتونه که شعر بفرمایید الان خیلی حالا اومدید با خوندن شعر آقای نوری و شعر آقای دانش و و ساز آقای شریف همه اینا برای من حال انگیز بودن من <تصفح> بسیار خوشبختم که <تصفح> قیافه بنده برای شما لوز ملال انگیز بودی اجازه <تصفح> بدهید لطف شما منو از زاویه‌ای که درش... نه شما برای این حال اضافه می میکنید آنچنان رو آنچنانتر میکنید حتما و خواهش میکنم که غزلی شروع بفرمایید و باز خواهش میکنم غزل بعدتون یا شعر بعدتون رو از خانم امیر خواهش, خواهش خواهیم کرد بخونم با اجازتون خواهش, خواهش, خواهش میکنم. میکنم چون غبار ره گرفتم دامن هر ره شاید از ره بگذری بر دامت افتد غباری بسیار گفته بودی صبر کن تا یک شب امیدت برآید. به که در امید یک شب صبر کردم روزگار. بخدا بسیار بسیار. گفته بودی صبر کن تا یک شب امیدت برآید. من که در امید یک شب صبر کردم روزگار. خیلی قشنگه. زهر جنس بلا در مشرب امید و شهد باشد گر به امیدی رسد اومید وارسیان بسیار, بسیار. سال‌ها دل خسته از بار غم ایام بودم ای غم تناظم که از دوش دلم برداشت بار به این به بازم بفرمایید آقای جلی سال‌ها دل خسته از بار غم ایام بودم ای غم که از دوش دلم برداشت بار تا تو را سرسبز خوردم بنگرم ای سر سرکش از سرش که دیده در پایت گشودم جوی باری بسیار. خسته شد بال و پرم بس در بیابون ها پریدم کاش من هم آشانی داشتم بر شاخ ساری بسیار, بسیار. بسیار. از باد خزان باشد گلستان محبت تا دران سر میکشد چون لاله هر سو داغداری تا بدانت سختیه حال جلی را در فراقش کاش یک شب مبتلا می به شد به درد انتظار ان بود گویا ان شاء الله آرزایون بودن بنده بودم آقا در معنا این دعای نفرین مقاب بود یعنی نفرینی بود در لباس دا چه او هم به درد انتظار مبتلا بش خود داره چه عاشق باشه چه معشوق انشالله به واس پرسید آقای جلید خوب خانم هم بیر مویز شما رو بخونم آسایش های فیرو بفرمی باش مایه رنج و بلا برای منی همیشه مایه رنج و بلا برای منی از این قرار که دل نیستی بلای منی بسیار بسیار همیشه مایه رنج و بلا برای منی از این قرار که دل نیستی بلای منی چگونه پذیرت میان ما ای دل که من تو هستم تو مبتلای منی خیلی. جدا مشو دمی از پیش دیدم ای عشق جدا مشو دمی از پیش دیدم ای عشق که یادگار من از یار بی وفای منی بسیار خوش قروب کرده مرا آفتاب امریقم قروب کرده مرا آفتاب امریقم چه شد که باز تو چون سایه در قفای منی بسیاره. چه چه وست گویمتی سرو بوستان کمال چه وقت وست گویمتی سرو بوستان کمال سر که سرفراز تر از فکر نو منی بسیار بخیرjadi چنان به تو بیگانه وار می نگرم که کاش گمان نکند هرگز آشنای منی خب آقای شریف دوستان چه اشونو خوندن و البته شو دیگرم باقی هستن و می‌خوایم برای تنوع آواز بشنایم شما سازتون کوک شده؟ برستنده مشغول کوک کردن هستم تمام نشده نو بس خود کنید آقا عجله نده این مزید تمام شد؟ بر خویلی خود آقای بل پایگانی شما هم که هنجره دون کوکه بله خیلی خود حالا استفاده هم کردید از منظر شعرها و تو حال خودتون رفتی میخوایم نتیجه این حال گرفتن حال دادن به بزم شعران و شمنبان عزیز باشه و شما بفرمایید که شیلی که میخونید از کی اول تا بعد بنده سوال دیگرم دیگر هم که امروز من میخونم از آقای مشفق کاشانی در چه مایه افشاری برای که میخونم بنده هفته پیش با آقای ایرش تهی کردم که آوازی که میخونید تو درامت ها یا از اول افشاری از اول همایون نباشه شان گفتن من دشتی میخونم با یه وضعی که یه قد متقایر باشه با وضع آوازهای دیگه. حله شما خانم کاری میفرمایید این یه تازگی یه بداهتی که این آواز بگیرید چش البته آهنگ صدای تازه میخونید ما اینجا رو در از قره شروع فرماین قره باقه اشکال نداره بیچاره صق تهران قره باقه نزدیکه خب دیگه همه آمدند و آوین شهر مازدرن که صدای گرم آقای گلپایگانی و پنجیری شیرین آقای شریف رو بشنوند تون شام همدم من ناله جان سوز من همدم من ناله جان سوز من باشد که نه همدمی خوشتر ندارم همدم خوش‌تر ندارا ادنواجتیش اخت بستن با سر زلش بطی پیمان شکر دل پریشان دل پریشان من پشیما از خطای پیشتن آواز اس میں زبر سوزی شکان من تشیما از خطای خیشتم آبای آو گرچن آوازهای گلپایگانیر هم شنیدید ساز آقای شریف هم شنیدید و حالا دیگه برای تنوع باید شعر شما رو بشنبید صحبتی ندارید اولا؟ نه خیلی بنده معمولا اون خاطراتی که معمول بود در جلسه جنابالی و جلسه بزم شاعران و اینا. بنده خاطره شادیاوری زیاد ندارم بنده رو اف بفهم من یه دم رفذ جمعی دانایی سوال کنم یه خاطره ای میفرم و دیدی صحبتی برام خاطره ای که قابل ارزشی ندارم به شماهای جلی البته زندگی ام آمیخته با خاطر است ولی <تصفح> <تصفح> چیزی بگن که مناسب با این بزن عده ای باشه به خاطر ادبی یک خوشمزگی از یک شاعری یک بیان گرمی باقای آقای فرات مسابقه ندهید تو انجمنی باشین چرا نه یه جریان برای خود من چند سال پیش اومد ها ممکنه بگم هرچی ممکنه خاطره شیرینی هم نباشه ممکنه از کای گلشن شیرشون رو بخونن شما خوب فکر بک کنی به اون خاطراتون کاملا برام توجه بفرمایید اگرم آماده گیرید الان بفرماییدا اینکه حس کردم که مرتبه بختتن به بب... تار کار ارث کردم بب... آمادهگی شن... نداشته باشی شعر کای گلشن رو گوش بدم اونم مانت که نیست اثباتش نه فی معادله میکنه نختر جناب علی رو بفرمایید سنان ارز کنم چند سال پیش در یه نشری ادبی کار می کردم یک کسی شعری آورد گفت رو من ساختم رو برام چاپ کنید اینجا من نگاه کردم می دیدم این شعر معروفیست از یک از شعرهایی خیلی سرشناس فقط اسمی شعر تخلص رو عوض کرده عوض کرده بود و تخلص رو چیگه وزن شعر رو به هم می زد گذاشت <تصفيق> این دیگه منطقه های ناشیگریه برای بعضی ها خانچی با ادرت تخلص عوض کن معدبانه بهش گفتم که آه شما خودتون زحمت بکشید شعری بگید زمینه شعر شاعری در ایران خیلی زیاده در زبان فارسی میتونید شما شعر خوب بگید از دیگران اختباس نکنید خودتون ابتکار داشته باشید این نصیحت ما رو قبول کرد و رفت بس از مدتی برگشت روی شعری اوور گفت که من به نصیحت شما عمل کردم خودم برداشم یه شعری ساختم و آوردم بعد این شعر دادیم شعر خود منو آوردم نصیحتی خیلی باشده نصیحتی خیلی خیلی مؤثر شده اینی بگن نقوض کلام نظرم میاد مطلع اون غزن هم چند بارم چاب شده بود همین غزن نبایی که خانم هم من همه سیاد روزی آشیاه گفتم اون آخرش ای جلی بود این وضع شد ای اسمایلیش کرده <تصفيق> <تصفيق> بعد داد من نگاش کردم گفتم واقعا شعرتون از نظر من بیعیبه فقط اون قسمت آخرش رو اجازه بدید اصلاحش بکنم دادم چاپ کنن براتون بعد اسماعیل رو زدم جلیش کردم و چاپش کردم از نوع جلی کردم جاشو و همون رو چاپ کردم خاطره خاطره با مذهب خاطره با مذهب خواهی باشن دیگه بهتر از این که نمیشه آزازو آزاز شنیدید شنیدی. خاطره خوب رو شن علایقی نو واط می شم. راست کنم بنده دو قطعه شعر دارم که اینجا بخونم، یکیشو خودم می خونم، یک غزلیه، یکیشم یک دو بیتی پیوسته است که آقای رضایان با اون ذوق و حال و مهارتی که دارن، فرض. بله به حال بره. این نکو بینندگان هنرمندم مهمان ما هستن، اوقات بی‌نصیب نباشن، دیگه روایت کنن شعر آقای اون رو. بله لطفاً. خواهش میکنید. تانه حال عشق با عشق پروردی ما تانحال اشک را با عشق پروردی ما بر ستهر سرفرازی سربراوردی ما آبروی اشک را در چهره زرد ما نگرد آبروی اشک را در چهره زرد ما نگرد روشنی بخش جهان از آتش دردی ما ده ده. بسیار. می گدازیم از شرار اشق و می بازیم جان می گدازیم از شرار اشق و می بازیم جان کس نکردستین چون این صدا ولی کردیم ما مستی ما را خماری نیست غیر از نیستی مستی ما را خماری نیست غیر از نیستی سرخوش از صحبای درد عشق پروردی ما جان پاکی ما نداری ملفتی با خاکیان جان پاکی ما نداری ملفتی با خاکیان چون زمین با خاک ساری آسمان گردی بحبه ما بحبه خیلی خوب بود خیلی من اعتماد میکنم کنم تکرار جان پاکی ما نداری الفتی با خاکیان چون زمین با خاک ساری آسمان, آسمان, آسمان گردی ما بسیار بسته پیمان جان ما با آتش سوزان دل بسته پیمان جان ما با آتش سوزان دل گفته خود افسرده چون خاکستر سرد ما از جوانی جز و نیست ما را در نظر از جوانی جزء و نیست ما را در نظر در پی این کاروان سرگشته چون گرد ما جان غم پرورد ما یک دم ندیدا سودگی جان غم پرورد ما یک دم ندید آسودگی آشقان را کاروان سالار از این دردی ما شعر دردنگیز ما شد آتش افروز جهان شعر دردنگیز ما شد آتش افروز جهان شیوه شیواست گلشن این که آوردی ما السلام علیکم اول نوری گفتن ہوتا ہے رضائی این قتشر آوارہ است یار میں نہیں سمجھا انشاءاللہ و شر حال گوینده و روایت کننده امکان داره تنهایی ندانم کند چون تایری فکر تو پرواز. به خلوتگاه تنهایی ندانم کند چون تایری فکر تو پرواز خیال تو که مری تیز بال است گشایت شهرور خود را به شیراز. خود میگوی یا او چرا رفت چرا دیگر سر دمسازیش نیست سوز الفخیش میپرسی که با تو مگر او آرزوی بازیش نیست چو چشم از هم گشایی در دل شب چو چشم از هم گشایی در دل شب نگاهی خیره میآید به یادت چه می کردم به چهره پرفروغت به شام تیره میآید به یادت به یاد بادخاری های دیرین شبد بر پا بساته می شبیه از نشعه می چون که سرمست خمارا لوده ای را یاد آری شبیه از نشعه می چون که سرمست خمارا لوده ای را یاد آری چوبانگی سوز ناکاید به بیاداری نوای ای خدایم سخن چون بر زبان آرند از شعر شبیقم گین به یاد نقمه هایم نمیدانم نمی دانم که دیگر کنار تو ز جای من نشان هست به صحنه خانه و بام و در آن هنوز از جای پای من نشان هست نشان از نامه من چون نبینی گناه خیش را آری به خاطر بیاده های های گریه من بیاده های های گریه من شبد اشگیز چشمان تو ظاهر ادانم راستی را داری اقرار که در پای تو من بیچاره گشتم ندانم هیچ میدانی تو یا نه چه از دست تو من آدار گشتم خب اگر اجازه بفرمایید بنده هم با قطع شعری از خودم به برنامه امروز خواهش میکنم شعری که بنده میخوام بخونم عنوانش هست موی سپید شاید طوله بفرمایید که شما موی سپید ندهید بله، بله. در حالی که از دو شاید فکر بکنید و از نزدیک تک تک موی های سپید دستر بنده هست آقای نوری میبینم نظرین چند در دومتیه من هستم <تصفيق> البته این شعر رو در 10 سال پیش بنده ساختم و اولین تار موی سپید در سرم پیدا شد به من گذشته زمان رو اعلام کرد که مدت از عمر گذشته و تو در قفلتی و یک جمله هست که از یکی از بزرگان سالها به خاطر داشتم و همیشه در گوش من بود و اون است که و اون عبارت این است که زندگی دو نیمه است نیمه اول به امید نیمه دوم دو میگذرد و نیمه دوم دو به حسرت نیمه اول <تصفيق> تا آدم جوان میگه به سن کمال برسم چین میکنم چنان میکنم امید داره وقتی به اون سن میرسه دریغ میخوره بر جوانی از دست رفته من در چین حالت این شیر ساختم و به قول زریفی میگفت فصل شباب و جوانی از وسط کتاب زندگی افتاده تا آدمی وقتی خطا کرده میگهن آقا بچه هست نفهمیده یه وقت هم با آدم میگن آقا از تو گذشته از تو قویه تجالت داره پس چه وقت ما مرتکب خطا بشیم و مصابی معلوم نیم حال مجموعه این کلمات و این حالات خلاقیت پیده کرد برای ساختن این شه و تاسف بر زمان گذشته و از ده سرات بیمانه آقای شریف سرکانم شروع بفرماییم آقا شب آینه رو به رویم گفت کی جوان فصل پیری تو رسید از دل مویهای شب رنگت تارهایی به رنگ صبحدم از رخت جلوه زمان شباب همچون مر غیز دام جست پریل؟ بر جبین تو دست چرخ و فلک خط پیری سچار بار کشید بی خبر جلوه شبابت کو وان همه لطف و رنگ و آبت خزان زندگیم از کف من گل جوانی رفت کام نگرفته از روز حیات موسم ایش و کامرانی رفت زدروی به جای مند و زکف رنگ و رخصار رفت بسیاره رفت عمرم ستوند باد ولی همه بارنج و سخت جانی رفت روزگار جوانی هم تی شد وی ندانم کی اومد و کی شد بسیار این زندگی که من دیدم سر به سر مهنت و عذابی بود بحره منز جام ساقی ده خون دل بود اگر شرابی بود لب هر طرف دویدم لیج بحره من زندگی سرابی بود خانه ای را که ساختم ز امید چون حبابی به روی آبی بود، زندگانی چوتون باد گذشت، زندگانی نبود، خوابی بود، گرچه با زندگی جوانی نیست، نقش زیبای زندگانی چیست؟ هم اینان من بودند، رنج ها دردها جدایها غیر بیگانگی نصیب نشد ذاشننایان و آشنایی ها هر گلدا و گلروخی دیدم، داشت بویی ذبی و فائی ها دلچ و آینه با صفا کردم. شد ایان نقش بی صفایی ها با جفا پیشگان وفا کردن دل به بیگانه آشنا کردن <موسیقی> یاد بادان زمان که روز و شبان یاد بادان زمان که روز و شبان داشتم کوشه فراموشی شالم من بود در سر زلفی صبح من بود در بناگوشی ما بودم ز نرگس مستی گرم بودم ز گرم آغوشی خوشچین بودم از رخ ماهی بوسچین بودم از لب نوشی بر دلم نور عشق میدادند چشم گویا زبان خاموشی <متصف> از گلستان من بهار گذشت شادی و رنج روزگار گذشت شنوندگان حساس و صاحب دل بزم شاعران این برنامه به دینجا پایان میفتید و بنده به همراه سرکار خانم دکتر فرخرو پارسا و آقایان دانش بزرگ نیا ابو تراب جلی گلشن کردستانی خانم فیروزه امیر معز و آقایان رضائیان امیر نوری گلپایگانی فرهنگ شریف شما را بدرود میگویم و برای همه شما دل شاد و بخت پیروز آرزو میکنه وعده ما با شما هفته دیگر همین روز و همین سابقه روز بخیر